سلام و درود به همه شما شنوندگان خوب و عزیز کانال هزار افسان. امروز هم در خدمتتون هستیم با یک قصه زیبای دیگه. اسم این قصه شاهزاده پربسر و شادوغ سلنداین هست. بریم که با همدیگه قسمت اول داستان رو بشنویم. روزگاری پادشاه و ملکه زندگی می کردند که از بهترین مخلوقات در این جهان بودند. اونها به قدری نازک دل بودند که اصلاً طاقت تنگ دستیه رو خودشون رو نداشتند. در نتیجه با گذشت زمان ثروت خودشون را از دست دادند، به طوری که واقعاً چیزی برای ادامه زندگیشون باقی نموند. خبر بی و نداریشون که به گوشه بروئین پادشاه کشور همسایه رسید، بلافاصله فاصله سپاهش رو گرد آورد و به سوی اون کشور یورش برد. پادشای بیچاره که وسیله برای دفاع از سرزمینش نداشت مجبور شد تغییر قیافه بده و با ریش تنها پسرش شاهزاد پربسر رو در آغوش بگیره و به همراه ملکه فرار کنه. بختیارشون بود که گیر سپاه دشمن نیفتادند. بالاخره بعد از خستگی زیاد و درد سرهای فراوان به در سرسبز و فریبنده رسیدند. در اون در رودی با آبی زلال مثل بلور جاری بود و درختان زیبا بر سرش سایه انداخته بودن با خوشحالی به اطراف نگاه میکردند که یک دفعه صدایی شنیدند ماهی بگیر و خواهی دید که چه خواهی گرفت خب پادشاه ماهیگیری رو خیلی دوست داشت و هیچ وقت بدون یک یا دو قلاب ماهیگیری در جیبش جایی نمیرفت اون با عجله قلاب بیرون آورد. ملک همکم بند خودش رو بهش داد تا قلاب رو بهش ببنده. همین که قلاب رو به آب انداخت ماهی بزرگی بهش گیر کرد. با اون غذای عالی درست کردند. بعد مدتی رو با خوردن تمشکای خودرو و ریشه خوراکی سر کردند. به این نتیجه رسیدند که فعلا کاری بهتر از اقامت در اون محل زیبا نیست. پادشاه سرگرم کار شد و به زودی آلاچیقی از شاخها برای سرپناه خودشون ساخت. وقتی آماده شد، ملک از اون خیلی خوشش اومد و گفت اگه تعدادی گوسفند داشتن کاملا خوشبخت بودن چون وقتی که پادشاه ماهی گیری می کرد، اونها می تونستن از گوسفندان مراقبت کنند. به زودی متوجه شدند که ماهی های زیادی توی آب نیست و به راحتی به قلاب نمی افتند. ماهیانی که توی آب می کردند خیلی زیبا بودند و پولک هاشون مثل طلا برق می زد. زیاد طول نکشید که پادشاه فهمید میتونه با اونها حرف بزنه و بهشون حرف زدن یاد بده مثل اینکه حتی استوتیان هم بهتر حرف میزدند بعد تصمیم گرفت تعدادی رو بگیره و برای فروش به شهر ببره ساکنان شهر که تا اون زمان چنان هایی های ندیده بودند با اشتیاق جمع شدند همه ی مایی ها به فروش رفتند حالا دیگه خونه که در تونگ های بلورینشون از این مایی ها نداشتند کامل به حساب نمی اومدند. مشتریان پادشاه افرادی خاص بودند که نسبت به جور بودن لوازم خونه دقت نظر داشتند و اون رو در تهی این جور وسایل به زحمت مینداختند. پادشاه با پولی که از این راه به دست برای ملکه گله گوسپند و مورد نیاز برای یک زندگی راحت رو فراهم کرد. اونها چندان به خاطر از دست دادن سرزمینشون افسوس نمی خوردند. درختزار زان که نوعی بلوته در اون دره قشنگ رانده شودگان بیچاره را در خودش جا داده بود زندگی می‌کرد. این اون بود که دلش به حال اونها سوخت و فرصت چنان ماهیگیری گیری را برای پادشاه فراهم کرد. در واقع اون از اونها حمایت می‌کرد. تمام این کارها رو می‌کرد چون بچه‌ها رو خیلی دوست داشت. شاهزاده پر به سر کوچیک که هرگز گریه نمیکرد و روز به روز زیباتر میشد قلب پری رو تسخیر کرده بود اون بدون اینکه اونها بفهمند که پریه سر آشنایی رو با پادشاه و ملکه باز کرد اونها هم علاقه علاقهمند شدند و با اعتماد کامل بهش اجازه میدادند که شاهزاده دلبندشون رو با خودش به قصرش ببره اون هم در اونجا با انواع شیرینیها و خوراکی های خوبی دیگه ازش پذیرایی میکرد با این طرز رفتار و اظهار علاقه شاهزاده به پری علامن شده بود. با گذشت زمان شاهزاده بزرگتر می شد و پری لحظه از آموزش اون قافل نمی شد و هر چیزی رو که شاهزاده باید بدونه بهش یاد میداد اما با وجود مراقبت پری بدبختانه شاهزاده آدمی بیود و سبکسر بار اومد. اون زندگی آرام روستایی رو نفرتنگیز می دونست. بنابراین، دست از این زندگی شست و با شور و شوق بسیار دنبال تفریحات ای رفت که در شهر نزدیک به محل اقامتشون مرسوم بود. در شهر به خاطر چهره زیبا و رفتارهای ناپسندش انگوش نما شد. پادشاه و ملکه از رفتار پسرشون عمیقا آزرده خاطر شدن. اما نمی چطور اون رو اصلاح کنند. رفتارهای محبتامیز پری پیر مهربان باعث شده بود که اون خود بار بیاد. درست در همین زمان پریه درخت میزبان دوست قدیمیش به نام سراداین شد. اون با ناراحتی و شتاب خودش رو به خونه دوستش رسند و اونقدر نفس نفس میزد که به سختی میتونست حرف بزنه. پریه درخت زارزان با آرامش خاطر ازش پرسید دوست عزیز موضوع چیه؟ سراداین با فریاد گفت موضوع؟ همه چیز رو میگم. میدونی که شاهدخت جزایر تابستانی؟ بدون رضایت از سپردن سلنداین به من از هر وسیله برای آراستگی و زیبایی اون استفاده میکنه من واقعا برای پرورش اون زحمت کشیدم اما حالا اون با ناز و غمضهای عجیب از من خواسته براش کاری کنم فکر میکنه از من چی خواسته اون با چاپلوسی از من قول گرفته تا تمام نعمتها و مواهبی رو که به اون دادم پس بگیرم چون میگه اگه بخت مساعد با من همراه بشه و اسباب خوشنودی شما رو فراهم کنم چطور میتونم بفهمم که واقعا خودم هستم؟ چطور میتونم زندگی طولانی داشته باشم؟ اگه هر بار با افراد مختلف تحت این شرایط ملاقات کنم زندگی که سالت باری دارم؟ با این حال اطمینان میدم که نسبت به شما به خاطر مهربانیتون قدر ناشناس نخواهم بود. سراداین به حرفاش ادامه داد هرچه در توان داشتم انجام دادم تا در این مورد بهتر فکر کنه اما بیهوده بود به خاطر همین بعد از انجام مراسم بازپسگیری مواهب پیش شما اومدم تا کمی آروم بشم اما از رفتار تحریک‌آمیز سلنداین هیچ سردر نمیارم طبیعت اون رو زیبا کرده و بهش هوش و ذکاوت داده و اون بدون من از عهده همه کاراش برمیاد البته فکر می کنم به درس کوچکی نیاز داره برای شروع کار اون رو در بیابانی رها کردم پریه پیر خوشقلب داد زد چی؟ تو اون رو کاملا تنها و بدون هیچ وسیله برای ادامه زندگی رها کردی؟ بهتر بود اون رو به من میسپردی. فکر نمیکنم اون خیلی هم بد رفتار باشه من بهش یاد دادم که کمبودهای زندگیش رو با دوست داشتن دیگران جبران کنه وقتی به این موضوع فکر می کنم به این نتیجه می رسم که این دخترک پر رو با تر این موضوع می روحیه و اصارت بیشتری مثل اونچه که هر کس از یک شاهدخ، انتظار داره از خودش نشون بده. سراداین با میل و رقبت موافقت کرد شاهدخ سلندان رو از اون وست نجات بده. اول چیزی که پریه پیر بهش فکر می کرد این بود که تمام مشکلات رویاروی شاهدخت رو برطرف کنه. به همین خاطر اون رو از مسیری پرالف به سمت آلاچیق پادشاه و ملک برد شاخه های درختان بر سر آلاچیق سایه افکنده بودند و اونها همچنان به زندگی آرام خودشون در اون دره در ادامه میدادند اونها از دیدن ظاهر اون شدیدا تعجب کردند اما چهره جذاب و وضع بامریک و انگیزش که خار و خاشاک از زیبایی های لباساش کم کرده بود خیلی سریع حس ترحم اونها رو برانگیخت اونها مثل دوستان دوران تنگدستی با رفتار کردند. ملکه از ته دل بهش خوشامد گفت و ازش دعوت کرد تا در غذای مختصرشون سهیم بشه. سلنداین با سپاس بسیار از مهمان نوازیشون دعوت اونها رو قبول کرد و کمی بعد رو که بر سرش اومده بود تعریف کرد. پادشاه شیفته روی شاد اون شد و ملکه با خودش فکر کرد که دوشیزه واقعا در برابر پری گستاخی کرده. شاهدخت گفت حالا که با شما آشنا شدم از اینکه به اینجا اومدم پشیمون نیستم اگر اجازه بدید که اینجا بمونم واقعا خوشحال میشم پادشاه و ملکه خیلی مایل بودند که شاهدخته زیبا پیششون بمونه و جای خالی شاهزاده پربهسر رو پر کنه پری شاهزاده رو به قصری در شهر نزدیک به اونجا برده بود اون در قصر با سرخوشی بسیار زندگی میکرد و از صبح تا شب کاری به جز تفریح نداشت سلیندانگ پیش پادشاه و ملکه موند ان در کارهای خونه به ملکه کمک می کرد. اونها خیلی زود بهش علاقه من و دلبسته بسته شدن. مواقعی که پری درختزار زان پیش اونها میومد اومد، شادخت رو به اونها معرفی و قصه زندگیش رو تعریف کردند. اصلا به فکرشون نمی رسید که پری همه چیز رو درباره باری سلنده می دونه. پری پیر هم به اندازه اونها از دیدن شاهدخت خوشحال شد. اون بیشتر اوقات رو به قصر علفی خودش که شگفت انگیز ترین جای دنیا و پر از گنج بود دعوت میکرد. هر وقت که شی عجیبی رو به شاهدخ نشون میداد، غالباً بهش میگفت این روزی هدیه عروسی میشه و سلندان به فکر فرو میرفت که منظور پری از این حرف عروسی اونه و اون دوشم مومی آبی رو که میسوزند اما کوچیک نمیشند الماسی رو که علماسهای بیشتری از اون بیرون میان. یا قایقی رو که در زیر آب حرکت میکنه یا هر چیز زیبا و عجیبی دیگری رو که با نگاه کردن زیبایی و شگفتی بیشتری در اون پیدا میکنند به اون خواهد داد حقیقت اینه که پری هیچ وقت در این مورد جدی حرفی نزده بود اما واقعا قصد کاری کنه که شاهدخت این موضوع رو باور کنه چون معتقد بود کمی نگرانی برای شاهدخت لازمه به نظر اون شخصی که شاهدخت واقعاً واقعا میتونست بهش اش کنه و این جای خارج زندگیش رو پر کنه کسی به جز شاهزاده پر به سر نبود. پری پیر اصلا از راهی که شاهزاده در زندگی خودش در پیش گرفته بود راضی نبود. با این حال نمیتونست نسبت به اون سنگ دل باشه و نمیخواست اون را از سرگرمی هاش دور کنه. به خاطر همین راههای بهتری برای بهره از زندگی پیش روش گذاشت. هرچند که بهترین کار برای بهبود اوزان نباشه. پری، داربویه شاهزاده پربرسر خیلی صحبت کرد. اون نه تنها نمیخواست شادوخ بفهمه که اون سبک سره بلکه اون رو امسانی کامل معرفی کرد. بالاخره گفت که شاهزاده میخواد با اون دیدار کنه سلندان تصمیم گرفت تا این شاهزاده محبوب رو بلا فاصله به دام عشقش گرفتار کنه و این از این فکر و تصمیم خودش هم خیلی خوشحال بود پری پیر هم از تصمیم شاهدخت آگاه بود اما چون این تمام چیزی نبود که میخواست، شاهزاده را افسون کرد تا شاهدخت به نظر پر به سر کاملا زشت و بدمنظر جلوه کنه. شاهزاده پا به قصر علفی گذاشت و شاهدخت رو دید. اون انتظار داشت شاهدخت بیش از اینها زیبا و جذاب باشه. بنابراین چندان دلش نمیخواست به شاهدخت نگاه کنه. در عوض تمام حواسش به پری پیر بود که به نظر می میرسید حرفای زیادی برای گفتن بهش داره. شاهدخت از این بیتفاوتی خیلی تعجب کرد و قیافهی سرد و خشمین گرفت که البته شاهزاده اصلا توجهی بهش نکرد. برای آخرین بار شاهدوخ تمام سعی خودش رو کرد که شاهزاده رو سرگرم کنه اما چندان موفقیتی به دست نیم چون اون در سنی بود که فقط مجذوب زیبایی ها نه چیز دیگه ای. و با اونکه شاهزاده رفتاری معدبانه نشون میداد کاملا واضح بود که فکرش جای دیگه ایه. سلندان که به شدت از شاهزاده خوشش اومده بود عمیقا افسرده شد. اولین بار بود که به خاطر از دست دادن محبت پری افسوس میخورد. هر چقدر که اون ناراحت بود، شاهزاده پر به گیج و منگ بود. چون اون از پادشاه و ملکه چیزی جز ستایش زیبایی شاهدخت نشنیده بود و فکر میکرد حتما چیزایی که اونها درباره شاهدخت و زیبایی بی‌حدش گفتند با ذوق و صلیقهٔ خودش و مردمی که در اون سرزمین زندگی میکنند مطابقت داره. بیتوجهی و قرور شاهزاده باعث اندوه جانگهاهی در سلندان شد جوری که اون شروع به گریستن کرد پری که از قرور و خودخواهی شاهزاده کاملا گیر شده بود نقشه ریخت تا اون رو به خودش بیاره پس قاصدی ناشناس رو با تصویری از شاهدخسرنداین واقعی همراه با نامهای پیش شاهزاده پر به سر فرستاد و اونجا نوشته بود که اگر دمدمی مزاج نبودی میتونستی اون همه زیبایی و جذابیت رو به همراه قلبی عاشق و کشوری بزرگ از آن خودت کنی این پیغام تأثیری عمیق بر شاهزاده گذاشت اما نه به تصویر اون واقعا نمیتونست چشم از تصویر برداره آهی بلند از تایی دل سر داد که هرگز هرگز بی نهایت زیبا و ظریف اونطور که تصویر نشون میده ندیده. بعد به این فکر افتاد که خیلی معنیه که او پر به سر دلربا عاشق یک تصویر بشه. پس چشم از تصویر برداشت و به شهر برگشت. به نظر می رسید که همه چیز تا حدودی تغییر کرده. دیگه زیبایی ها خوش آینده نبود. دیگه حرفهای شاد و نغز به دلش نمینشست دیگران هم اون را بیخیالتر از قبل میدیدند و وقتی شنیدند که اون قصد داره یک زندگی ساده در پیش بگیره اصلا تعجب نکردند اون به قصر علفی برگشت در این بین شاه دخسلندان این فرصت رو پیدا کرد که با پادشاه و ملکه هرچند بکندی اوقات رو سپری کنه وقتی دوباره شاهزاده رو دید بیش از حد خوشحال شد اون فورا متوجه تغییری در شد و شریدن کنجکاو بود تا دلیل اون رو بفهمه. شاهزاده با اون همراه شد و از صحبت با اون بسیار خوشحال بود. با این حال شاهدوخت حتی لحظه ای از این فکر دلخوش نبود که اون به دام عشقش گرفتار شده و خیلی طول نکشید که فهمید اون حتما کسی دیگری رو دوست داره. روزی شاهدخت در حالی که با اندوه بسیار در کنار رودخانه قدم میزد شاهزاده پرو سر رودید که در سایه درختی خوابیده. اون نزدیک شد تا چهره عزیزش رو ببینه که یک دفعه شگف زده شد چون در دست شاهزاده تصویر خودش رو دید. اون از این تناقض آشکار در رفتار شاهزاده گیج شده بود چرا شاهزاده تصویر اون رو اونقدر عزیز میدونست اما نسبت به خودش بی تفاوت بود بالاخره فرصت پیدا کرد تا از اون اسم صاحب تصویر رو بپرسه اون جواب داد افسوس چطور میتونم بگم شاهدخت با ترس پرسید چرا نمیتونی؟ حتما چیزی مانعت میشه. شاهزاده گفت چیزی مانم نمیشه. تلاش بسیارم برای پیدا کردن اسم دلارم به نتیجه نرسیده. اما حالا نباید قمگین و دل باشم؟ من حتی اسم اون رو هم نمیدونم. شاهدخت متعجبتر از همیشه از اون خواست اجازه بده نگاهی به تصویر بندازه. بعد از چند لحظه وارسی اون رو پستاد و با شرمندگی خاطر نشان کرد. صاحب تصویر که خیلی شبه اونه جذابیت و دلایل بیشتری برای اون داره که عاشقش بشن شاهزاده گفت یعنی yani, تو این چیزها رو به حساب چاپلوسی میگذاری واقعا سلندای من در موردت بهتر از این فکر میکردم و انتظار داشتم فراتر از این حسه حسادت تحقیرآمیز رفتار کنی اما تمام زنها سر و ته یککر باسد شاهدخت فروتنانه گفت در واقع من فقط به شباهتهای تصویر با خودم اشاره میکردم شاهزاده خودش رو به پاهای شاهدخت انداخته و با فریاد گفت پس تو صاحب تصویر رو میشناسی خواهش میکنم بگو اون کیه و منو در حول و هراس نذار سلندان فریاد زد نمیبینی که این تصویر خودمه شاهزاده از جا پرید و به شاهدخت گفت که به دلیل تکبر خودبینیشه که فکر میکنه شبیه صاحب زیبایی تصویره در حالی که که به بهش شباهت نداره اون بعد از اینکه نگاهی سرد به شاهدخت انداخت بدون هیچ حرفی قصر علفی رو ترک کرد شاهدخت دیگه تاب اقامت بیشتر در جایی که بهش ستم شده بود رو نداشت پس بدون خود حافظی از پادشاه و ملکه در ر و ترک کرد و اندوگین و سرگردان شد حالا تا اینجای قصه رو داشته باشید تا در قسمت بعدی ببینیم چاهدخت سلنداین چیکار میکنه روز و روزگار خوش. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها هایی از غول ها و کوتوله ها ماجراهایی از جادوگرها سفر به سرتمین های جادویی و تلزم شده رفتن به دنیای پریان